رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان، اف کردن از ظالمان جور است بر درویشان، خبیص را چو تعهد کنی و بنوازی، به دولت تو گنه می کند به انوازی.